گفتن که صدقه رو به چه نحوی پرداخت کنیم صدقه رو نحوی خاصی داریم یکی از راه های پرداخت صدقه این هستید جای ظرفی چیزی آدم داشته باشید صدقه رو اونجا جمع کنه این مبلغ مناسبی که شد بده به فقیر مومن